بسم الله الرحمن الرحیم الحمد للهی رمضی آرامین و صلی اللہ علیه سیدنا و رسی اللہ و آلیه طیبین الطاهرین و معصومین و لعظه دائمان چهار و عدیه مجمعین و جمیه المشترین و رحمت الله ارسود که بعد از این که خونده شد و کیفیت ورود داری روید پیشم و و از ما هم مبارک عمی علیه و که این مطالب فرمیدم. به نظر ما دیگه مطلب کاملا واضح و روشنه که از مجموعه این روایات قدمت جنان و همون محنایی که در مدین محل کلام بوده استفاده بشه. ارز کنم که یه بحثی هم راجع به استثنا بوده از کنم هدی انصافا استثنا نیست شون اصلا غیران انصاف و اون در اعراس هم شده این استثنا در کلمات عامه اعیاد. اعیاد هم در فیشی ما یک رواهی واحده است که هم فرح داره به هم این فرح و اعراس بگیر مثلا بگیم ما لیکن از که باید رواهیت به لحاظ سندی فوق الاز مشکل داره به لحاظ مشکل داره و اعتماد بر اون رواهیت محسوسا که از خود سنده جلپر هم اطلاع نهره شده در باب جناه خونقدر آده مشکله و یه روایت دیگه هم بود درباب عجر مغنیه که از کرده این دو طور روایت بود که روا تعبیر از سی سماه که اون کرهه داره اگر کره من این کراحت یرفتیم که خیلی آقا زمان معنی احتمال معنیم قرمت باشه علایه مجموعا ما خود ما یک دلیل خیلی واضح روشنی راجع به مسئله استثنا نداریم لیکن بعید نبینستیم که استثناء، استثنای ارز خود به خود بوده نه بکر بوده احتیاج به استثناء نداشت بله اعیاد به استثنان داره که اون هم ثابت نشد و مطلق فرح که در این روات آمده اون هم ثابت نشد اونی که هست وقت عنوان ارزه بلا چون این روات واحده و عنوان فرح آمده لیکن خب این خیلی وارد زید این راجع به ح و اما راجع به موضوع بله انصافت تحقیق موضوع غنا در مجموعه یه روایات فوقت عاده مشکله فقط به خاطر اینکه کلمات لغوی مشکله به ذهن ما مشکلی کلمات لغوی از مشکلی واقعی حکایت میکنه به مشکل واقعی وجود داره نه مثلا لغبی این جالا مثل کلان لغوی این گفته فلان این گفته واقعا یک مشکل عرفی و در اجتماع و این توضیحاتش را از کل میسا جهات مختلفی داره چون امروز وقت گذاشته و نمیرسیم وقتا طولانی شد من فقط یه اشاره آبره می کنم اشاره توضیحش رو جدیه که موضوع ما از کلیم یک مطلب اولا خود مفاهم و عرفی طبیعتا مشکل سازه. چون عرف اعتماد رو لغت لغت اعتمادش رو اعتبار اعتبار نشه و اون اعتبار در جامعه قد دو بدل نشه تفکیم و تفاهم نشه لغت درست نمیشه ولی زا چون تفکیم و تفاهم هم در مشتمعات مختلفت و با فکر های مختلف و با زواده مختلف خواهی نخواهی ایجاد اختلاف میکنه مصطلحات علمی یا مصطلحات فنی یا فرض کنید مثلا پیشرفت‌های های سنتی این مشکل آفرین نیستن مثلا این رو پشتش می یک یکی هزارون مثلاً،, مثلا گرم بود، از خلان ماده باشه 5000 هزارون گرم از خلان ماده باشه نیم گرم از خلان ماده باشه این خیلی راحته یه مجموعه رو جمع می کنه اسمایش و درجاتش رو می اسمش آسپرین اگر نسبت ها چه عوض بشه یک داروی دیگری میشه. اما ما لغت رو اینجور وضع نشدیم حتی لفظ آب لفظ نان الان بیدیم دهان رو ما نان داریم آیا این نان هست همین نان برنجی دیریم شبیه چی به نان برنجی میه شما تو این نان نیست این کلانه نان برنجی این در حقیقت نان نیست خود بهش چون نان گفتن بیدیم مقایم عرفی یک طبیعت مقایم عرفی خودش اختلاف برنگیزه این یک دو اضافه بر این چون هر موضوعی داره یک آثار خاصی است، گاهی اوقات بحثی پیش آمده موضوعات الهاقی این موضوعات الهاقی همیشه در فرق بین ما شوی نرسونن سنن مشکل آخرین بوده پس اون گندم جهداره شکل معینه حالا مثلا بعد از این که مثلا موسامان رفتم بعضی‌ها در پاکستان یا در هند یا در افغانستان یا در ایران یک شکل یک گندم پیدا کرد. مثلا به شکل معیار داره. بر جای شدیده باشید نه چون یک هم گرده داره. به که این موند. اما به این خود گیره. حالا ممکن است که بین عدسه. چون گیره شاید عدسه. وقتی می‌تونم سفید بیم. مثلا به یه موضوعات الهایی بحث مفصلی داره که ما در چند بار قبل از چون نمی‌خوانم فعلا وقت خودمون بیایم به این جا. فرد اشاره کردم این بحث موضوعات الهاقی مثلا فرد از اون قدم اتقن قناه بود که در مکه بود در ذهن مسلمان آیا قناه مدینه هم است؟ آیا مثلا هودی بعضی کنون هودی هم قناه است با این اون هودی برای شدار میخوانیم که راه داره هیچ حالت قناهی توش نداره بگرد میکنیم این یک مشکل کار موضوعات الهاقی است مشکل دیگری هست در عده از موارد این در فقه ما هست و همونزم مشکل سازی انصافا هم حل نایی شده است وقیقه الله ولی الله که ما بشه بزن حل بکنه بعضی از مخواهیم تابع فرهنگ های مختلف شده این خیلی مشکل درست کرده خدا یاد در زمان خود ما. شما یه مروری به عالم اسلام بزنید در پاکستان، و افغانستان، و ایران، و در خلیج و کشور عربی و بعد بریم تا مثلا شیعیان یا اهل در اروپا و آمریکا حجاب واقعا یک پدیده عجیبی است هر کدوم یه جور خب اصل حجاب و اصل عفاف در اسلام مسلم بوده اینجا بحث ندوده اما تمدن‌ها و فرهنگ‌ها لنجت تأثیر داشتن تصادفاً جنا هم چیزی شبیه حجاب داره یعنی در تمدان های مختلف و در تمدان مختلف تأثیر گذار بوده هرچی سعی کردن که یعنی فوقه ها سرعی محدود بکنن محدود کردنش خیلی مشکل شده فوق آدم خصوصا نکته چهاروان بهش اضافه کنی که در مدینه با وجود صحابه و بعد صحابه یک نوع از غنات پرتعا رواج داشته فوق آدم رواج داشته خب دشوار نمیتونن یعنی البته ظاهرا زمان و عمر اینا نبود اگه بودیم میشه بعد از زمان ما آویه و زمان مثلا یزید اینها تو خود مدینه این رواج بوده اسامی مغنیها هست کتاب الالعوانی اسمشونو برده شعرایی که اینا میخوندن و حتی کیفیت خوندن شعرام کتاب الالعوانی داره که اگه من تو سر دربیارم شعرایی که این میخونده و کیفیت ادای صوتی که این داشته، و بعد مثلا مغنی دیگری در کوفه همین به نوع دیگری خونده، و اینا همه درست شده چیزی نیست که در نشده باشه اینا آمنه این میشه که تشکیف دقیق اون موضوع حرام مشکلی میشه. پس یکی از دیگر از عوامل مجموعه عوامل در اینجا وارد شد اون وقتی این یک پنجم در مسئله قناقیل از اون جهادی که در مکه بود اون جهاد مکه را حضب کردیم مثلا پس از اون زباطل اعلام بود زنهای مثلا کذا بود اونا سه تا مطلب خیلی اساسی بود یکی این که مجرد صدقنا باشه دوم این که مزمون اون قبیه باشه و قناعی باشه و محیده باشه سوم این بود که آلات موسیقی باشه باشه یا نباشه این سه تا نکته که منشعه مشکل در مواقه قنا شده ولی زام خوندین حتی از اولمان حضرت صدقنا قناعی با آلات و تقریبا مسلمان حرام دیدن اون یکیش بحث کردن هم به درقالات هم عرض شد دیروز در خلال بحثی گذاشته نسبت از حیث شواهد دفت سازتر بوده در بقیه اشکال بیشتر بوده مثل بربت و عود و اینها اما در خود دفت اشکال کمتر بوده در روادت ما هم من حیث المجموع آمده اشکال سر در روادت ما هم موجوده پس این مجموعه یه عواملی بوده ما به جای که به دنبال محلوب بریم اون لیشه ها رو بکنه این مجموعه یه بوده که اون رنای محرم رو که بخیم تشخیص بدیم که در روایات که من کرد و احمد علیه و وارد شده دقیقا چیه با مشکل رو برو میکنه هم مشکل داره و نظام مثلا فلسفون شاید بعضی عرضی منجرد که صداشو بلند بکنه یوغنی تو خود دید یا صدا زیبا ماشی یوغنی هست در اصطلاح آماده یعنی ما وقتی میرم کلمات بسیار تاریخ محرقین سباز تاریخی میخونیم استعمال و هنا رو در عرض عریضی میبینم اختلاف سر لغبی ها دیم اون چیزی که لغبی ها از ما گرفتن اختلاف دارم و لذاب انصافا بخوایم دقیقا بگیم لغت عرب به این معنی است. مخصوصا ارز کردیم یک مشکل دیگه کلر در لغت ها وجود داره و اون اینکه که مخصوصا در لغت عرب یه ارز اندری داشته یعنی مثلا یمن از یمن بگیریم بیاین تا بالا. و بعد هم به خاطر آمدن فرهنگ های دیگری مثلا زمان بنی عباسین ها اصلا در الفاظ بازی شده تلاعب شده یعنی الفاظ جا, به جا شده اصلا گاهی اوقات لفظ یک خودشو خودش کلن از دست داده مثل منجم در روایان من صدر منجمان توبی منجم در روایان این سهار یعنی جادوگر یعنی ساهر این تلسمات. اما شما در کتاب بعدی منجم این علم نجوم این علمه این اصلا دقیقا با اون مختلفه جاوش شده من تا برد از محاصلی نبذالله اربست شد داشته به این تحریباتی با روز که نجوم جمعای به باه میگن گفت به باه داشته که منجمین اصلا مراد مراجب سهره مراد تلسمات رفتی به منجم زمان ما نداره اصلا دو تا اصطلاحه اصلاح اصلاح کلان عوض شده یکی اوهام و خرافات یکی علمه تحریمات علمی رفتی اصلا به هم میشه تو لفظ پیش میاد این خوب درقت بکنی ما این مشکل رو داریم خصوصا چون دنیا عربی داشته. بعد که آمدن به عنوان زرد شدن چون من تو زیاد چه سابرم در لغتی هست کردم مشکل اساسی اینه که تدوین لغت در دنیا عرب نیمه دوم دو قرن دومه دو نیمه اول قرن دومه دو از سالهای 130 و 140 رو که عرب تدوین لغت و در اون وقتا چون عراق یه جور بود شامیه جور بود یمن یه جور بود این غیر از لحجه ها الفاظ بود. اینا در فکر جمع آوری لذا ممکنه مثلا تو این منطلعه حجاز کسی تحسین صوت رو غنام میکنم تو اراق اینو رو غنام یا تو اراق غنام میکنم تو احجاز نمیگنم من بخواسته به مشکل رو عرض بکنم ما در لغت عرب به خصوص بخواستیم که یه عرض حریزی بود و بعدم این بیر برداشت تصویر شد حتی ممکنه مبانی فقهی شدن در این تدوین اثر گذاشته باشه مثلا ایشون گفته قناه جایزه و اون قناهی که جایزه تحصیل و صوته قشنگ گفته این جایزه اون فتوای فقیه ایش برای این لغوی چون متاسفانه لغوی های ما یا نحوی های ما اینا هم اصحاب مذاهب بودن چه کلامی چه مذاهب فقیه اینی اینه که شما پرست ابن ابنه در در موقع نو میگه ازنالله ازنال مومین امواله هم و امقصه هم, هم لهم با برا چون این متکلم اشعری در در تفکر اشعری وحدت و عین قائل شدن در اصطلاح خودمون به وحدت و ان الله اشترم ببینید خب اون تفکر کلامی خودشو در معنای آیه ظاهر آیه که آی... مقابله است دیگه وقتی میگه, میگه طول قلم به در همه زارش مقابله است ان الله اشترم در مؤمنین اموالهم به انفاق به ان وای به ان زارش مقابل. مقابله نیست این نه اینکه لغته اون تفکر اشعری که حاکم شده اون تفکر اشعریش تاثیر گذاشته دقیق نمیذانم اینم یک مشکل دیگه که در قرن دوم تفکرات کلامی و تفکرات مذهبی و تفکرات فردی حاکم بوده شاید نظرش بوده که قناعه جایزه اون قناعه جایز چی میدونه سه اون نمیدونه که مثلا سلاچ چشنگ بلند بکنه اما اگر باش رخصت نباشه از این غیره نمیفرزم ذهن نمیدونه چه چیز دیگه میدونه اون محرم رو به قطعه هایی اینه که رجوع به قول لغوی ها در اینجا هیچ چار ساز نیست به جایی نمی رسونه ما قبل از این که به قول لغوی ها مراجعه کنیم متون تاریخی فراوانی داریم در این متون تاریخی کلمه غنّا و یوحنی به استعمالات مختلف با آمده می کنیم از این حدیث معروفی هست که شریع هم هست لی سمه نامنلم یه تغنّه بالقرآن حدیثی ا من از امانتی رو بازم تو یه جزء ضعیف دیدم. لیست من نه من نمی‌تحقن نه در از این فهمیدن که خناد در قرآن دو جای دارد. اصلاً باز خناد بگو که دو جای داره. باز از دیار اهل سنت دارم چرا شافی؟ معنا کرده. لیست من نه من نمی‌تحقن نه در قرآن. یتحقن نه در این جایی یعنی به قرآن بینیاد بشه. نه اینکه غنا به قران لذا از کلی غنا داریم من مخسوره غنا. این به معنی بیمیازیزی از ماله یک غناء داریم در این همین آوازه بس آوازی که از اینه و لذا انصافش اینه که در این جور موازه ترتیب فوقها اینه که مادام اصطلاح و لغز و استعمال مختلفه به اون قدر متعقل اصباد بشه البته عدد متعبن متعبن اینه که خود مضمون باطل باشه اما انصافاً که مرمومی روانی هم اول گرفته شرط اوله. انصافاً با مجموعه شواهد اینطور نیست با مجموعه شواهد. مثلا فرمبر رامون بدین غنا بکن چون انصار اهل قناه هستند جهنا کن جهنا کن فهیانا و حیا کن فهیانا و حیا کن فهیانا و حیا این هیچ مضمون باطل نداره تعبیر به غرام شده این تعبیر هیچ مضمون باطلی نداره لذا این احتمال که غنا در حقیقت یک کیفیت صوتی باشه با قطع نظر از مضمون حتی نستجری اول ممکن یک آیه قرآن رو با یک کیفیت لحوی و مهیج خونده بشه البته عرض کردم ممکن است بگیم قدر مرتیق قانون است که مضمون باسیلی است که در شعرات صحابر نبی رویه خونده از این قدر مرتیق قنون اما انصافا که خود شیخ هم برگشت اول احتمال برگشت انصافا به نظر ما حق باشه یعنی به ذهن میاد که با قطع نظر از مضمون اگر کیفیت، مهیج و مهیج باشه و لحوی اون معنی به ترابیو حالت حالتی ایجاز بکنه ولو مضمون هم باطل نباشه اون هم غنابا استادم میکنه یعنی یک کیفیت سوکی هست حالت تحصیل توش هست حالت مد و توش هست حالت ترب آوردن و لحوی بودن توش هست مرحوم استاد به اضافه کردن مناسب با مجالس له باشه خود با هم صابرن میگفتیم انصافا این قید اخیر نتونستیم اثبات بکنیم با این مراجعه اخیر کردیم این خیلی مشکله این نمیتونیم اثبات بکنیم بخواد مناسب با مجالس له باشه یا نباشه این قید اخیرش خالی از اشکال نیست اما واقعا مضمون که مضمون حقی باشه اصلا فرض این شعرهایی که مثلا حق بکنه. اما به یک نحوه مترب و به نحوی که مهیج باشه زواهر عدل احنا شاملش میشه تعریف لحبی بودن چون خودش در حرف لام لحبه بیاره اونجا میگیم این لحظه اینجا غیر از اون لحبیش که در اونجا خواهد آمد لحبی بودن یعنی مهیج بودن محرک بودن و به طرف و شوق آوردن لکن نه در مقابل یک عمر واقعی در مقابل یک امر خیالی باست عمر ذهنی صرف این مراد ظاهرن این طور باشه بله شاید اگر مراد استاد این باشه بد نید علایه خود من هم سابقای مرام بیم که مج... مناسب مجلس لحب باشه میکنی تو این مجموعه عدله که الان دو نگاه لحب اسف... باشه از مجموعه عدله در این نیست که مناسب با مجالس لحب باشه اون اگر مثلا سقه خوندنی باشه که این طور نباشه این راجه به خود کیفیت سود اما مسئله یه آلاته قناع همون دیگه مجال در همینه بگن. دیگه مخواهیم همینه بگم مخواهیم بگم مخواهیم کل از یک عبارت در یک فضایی تأثیر بکن در فضایی دیگه نکنه این که فضا فضایی لحو مثلا مناسب با کاباره باشه نه نه نه نیست این رو اثبات میکنه این روید خیلی مشکله با مجموعی روایت مشکله اما به هر حال انصابش قدر متیقنش همونه اگه از باب قدر متیقن شده عرض کردم یک تفاوت شدیدی در معنای قناه آمده اون قدر متیقنش اونه اون حالتیست که مناسب باشه با مجالسی که یلگی انزک خوب خب همین روایت قناه قدر متیقنش همین دیگه بله. بعد اون بحث دیگری است که مثلا تهیج شهوانی به غیر از مثلا کنیز و به غیر از زوجه جایز نیست در هر نحوی باشه اون بحث دیگری است اون باج دیگه دلیل داره اون دلیل لفظی داره. داره. داره. بله. چرا؟ قسمات زن که مشکل دیگه داره که سلسو زنه و تحییز در اونجا خب طب طب طبیعتاً بیشتری که خب میموشه این اون قسمتی که مغنیه با باشه قطعاً مشکلات شکلی بیشتر از جزیز که مغنی من. و اما نسبت به آلات انصافاً مجموعه روایات ما با صحیحن و ضعیف و صحیحن همه رو با هم بگیریم اون خودش به نصف مهمه اون مقصن این آلاتی که آلات مثل بربت و اود و اینها روایاتش فوق العاده زیاده یعنی یکی دو تا نیست و اون روایتی که امیرال مومنین مثلا بربتی و شکنده رو کسی شکونده بود برزان زامن نیست اجمالا روی بعضی از مبانی صحیحه از کنم سابره این طور نیست همه مبانی زیاده اگه و فتوا همه زیادی بر همینه که شکوندن این آلات اونجا به زمان نمیشه حالا چون روایتش خیلی سهیه سعی نیست ممکنه کسی توقف بکنه اما مجموعه روایات و مجموعه شواهد در اون جهت زیاده لذا اونهایی که به عنوان متعارف آلات غنا حساب می شده بله ممکن است فعلا بگیم بعضی از وسایدی که بشر تازه درست کرده برای یک محبه موسیقی رسمی که مثلا بقوله حجم زفنون جزو شعب علم ریاضیست راجعه به اون موسیقیتون بحثی دیگری و الله جزو آلاتی رو که به طور متعارف در روایت آمده ظاهرن اون حکم نیست حالا میخواد جنابا چی آقنا نمیش اون عنوان خودش داره عنوان آلات مجموعی روایت بلظام مرحوم شیخ انساری یا سال سارید یا بهار بحث جامعه لحادیت بحث آلات رو از هنه جدا کردن صحابه رو متعرض شدید مرموم شیخ هنساری بیع المغنیه یک جا آورد بیع و رو یک جا آورد خود غنا رو یک اصلا اون یه بحث مستقل خودش رو داره عنوان خاصی خودش داره. یه آخر کلام یه روایتی است که در بعض از روایت ما به رسول الله نصبت شده که غنای اون به تو نفاق فرقه یه توضیح راجبی روایت مبارکه از جهات مختلف رو از ظاهرن این غنایی که در اینجاز غنای مدینه هستم همین که محل کلامه نه غنای مکه این نکته رو هم برم چون ظاهرن در غنای مکه, مکه که آیه مقالب آمود لیوظه لعن سبیل الله نفار نیست و یک تخیضه ها هزوونه و اداتتلا علیه آیاتنا و لا مستکبرنه این تو غنای مکه این غنایی که الان محل کلامه هست که اسم گوشیم غنای مدینه این میgradle بوده کیون بهش نفا و نکته لطیفی که در اینجا به کار برده شده دقت بکنید که ان نماز و شاید همین سرچشم این بوده که منشأ خفار و حرمت شده در غناء مکه امر اختیاری ذکر شده خب دقت بکنید لغزه ل عن سبیل الله به غیر ار امر اختیاری و یثقد اما در جنای مدینه امر غیر اختیاری ذکر شده مثل اینکه یک دانه گندم از دست شما بیفته تو زمین خودش فرض میشه اختیار شما توش نیست این خیلی لطیفه این شاید اون کسانی که این عبارت گفتن حالا از رسول اللهی از ائمه یا از بزرگان از قائل این کلام هست این اشاره می‌کنه مخاطب اینو بگن چون این قنا موختلفه چه بوده خوب دقت می‌کنید می‌خواد بگه این قنا شأنش از اون بناست این گناهی که شما ادعی جائز میدونه انجام بدید می بخواهید نخواهید در شما تاثیر میکنه در رواد شما تاثیر میکنه این غیر از اون گناه مکر تشکیل زوات و رایات و اون نه اون لیظل عن سبيل الله اولا نکته اول کار اینه که یک امر تکوینی است نکته دوم که در اینجا از دو جور تعبیر شده یعنی سه جور یکی از گناهیون به طور یک تعبیر شده همچنان که درخت خورما به اصلاح اون میوه ناره تل حالا شکوفه من تعبیه شکوفه همچنان که درخت خورما شکوفه میده شکوفه یعنی خورما نه مراد شکوفه یعنی به اصلاح اون مثلا گوره מסه همچنان که همگور مثلا گوره یک تشبیح اینجوری شده یک تشبیح اینجوری شده کما یون Be fulfilما الهاش همچنان که آب سبزی رو بار میاره سب فیده عجیبه. دو تحبیر. سه تعبیره، یک تعبیر زیل نداره. دو تا زیل مختلف هم آمده. یکی تعبیر شده. بی میوه ای یعنی غینا در وجود شما مثل اینکه که درخت میوه بار میاره. درخت پرسه انگور انگور میاره. این غینا در محض شما نفاق بار میاره. یکی اینجوری تفسیر شده. یکی تفسیر شده همچنان که آب سبزی رو بار میاره. بخاطر کنید من فکر می کنم دو تا نکته درش ملاحظه شده نه یک نکته. پس اولاً متن روایت دو جوره این نکته دوبار در اینجا نکته سوم از کردم در بعضی از روایات ما در رسول الله نسبت داده شده حالا اگر ما بخوایم در اون شواهدی که همیشه عرض کردم شواهد تاریخی رو نگاه بکنیم از کردم یک نامه ای عمر بن عبدالعزیز خوندیم متن نامهشو به نوکر خودش به خودش نوشته برای تعدید اولادش خیلی دیدنی اون نام خود به متنش کامر خوندید خیلی عجیبه که میگه من با اینکه غلام میشه میگه من نمیذارم بچهای من در دامن بنی امیه تربیت بشن چون تو رو مرد مظلی میگم تو باید کاری بعد میگه اولین کاری که اینا بکنی جرم ملاهی رو بگی قنار از شما بگی چون ریشه تمام نفاسونه اون خیلی عجیبه میگه غلامش میگه اولین کار اینه بعد در توضیحش میگه فقط بلغنی ان این کلام در سال 100 نوشته شده. معلوم میشه تا سال سد لاعقل این جور بوده. لاعقل در محیط حدثانه چه این کلامی ان رسول الله نروده. خب بقرار کنیم. ایشون که فهنهو خد بلغنی. این حملت العلم این نلغنایون به تل نفاق فلغن کمایون به تل ما الارش اون مطمی که میاره این مطمی رو به رسول الله نسبت نمیده به صحابه هم نسبت نمیده. عجیبه نسبت بلقنی از حملت الار بعدم من سابقا توضیح دارم در اصطلاح اون زمان عدد بود نموزن کامل صاحب عدد عدد همین عدد بیاد اصول و رسول این نگم نحو سر بگیم صاحب حدیثه یعنی نحل حدیث میکن که مثلا چی؟ میگفتن یوروانه و, و فرق و حدیث فقه عبارت از تفریع کردن و خارج شدن از حدیث و تفریع خروع کردن موده و وکان صاحب خزن خزن مثل انساب و اینها بوده علم مثل اصول و مثل اقایت بوده مثل کلام بوده این تأبیر خیلی واقعا تأبیر دقیق خیلی نهو خود بلغنیه ان حمل اصل علم نمیگن حمل اصل حدیث خب اشار میکنی که این حدیث نیست کسانی که ما، ما به اصطراح اهل علم هن. باز فقه هم نگفته ایران در اینجا مثل متکلمی مثل فلاسفه به اصلاح ما کسانی که جنبه های معنوی رو در نظر میگیرن نه مثل انصاب و تاریخ او رو فرض میگفتن نه مثل عدبیات یعنی کسانی که به اصلاح موزه ما اهل معنوسته رو سلو کرد اینها گفتن اینهایی که میرسن در حوائل اشیا اینا گفتن که نخاب در وجود انسان معنا در وجود انسان همچون که آب سبزی رو رشد میده نفا رو رشد میده این نقطه سوم نقطه 4 سر تشبیه چیه چرا دو تا تشبیه آمده ظاهرا سر تشبیه اینه در یک تشبیه خواستن بگن که رنا که شما گوش میدید این یک بذریه که تو زمین کاشته میشه به این تو مغز شما این غنا میره یعنی به عبارت از این اخرها ممکن است شما یک شعر رو بشنوید هم ممکنه این تکرار نکنید اما یک شعر رو با یک آهنگ خاص شما همچنگ راه میرید یا دراز کشیدید یا نشستید با خودتون زنزن نمی این حالت به قصد و طبق اون شعر طبق اون حالت این کلمه‌ای که شما شیدید مثل اون برد میره تو وجود شما و الاتو وجود محض. <متلاح> یا تعالی اصطلاح عصب الاشلا این یواشوش در اعضا و جواره شما مثل یک نباتی مثل یک درختی ظهور پیدا میکنه ظهور این اینه که شما یواشوشا رو یک صدا ممکنه خیلی ازا مزعج بشه یواشوشه جنار بشه و این کارها داره اشتباه میشه این کارا مخصوصا اگر جناحتو که اراده کردم مضمون باطلی داشته باشه مضامین مهیج داشته باشه و این رو با خودش این تدریجا جوری میشه که اعضا و جوارحش ولو بحث از دار مسلمان کاملا مسلمان کاملا مقید کا لكن یک حالت دوگانگی نه قانون نماز این این هایی برای میل به گناه در او ایجاد میکنه اما حرفی که عمر بن عبد این یک دو احتمال داره تشبیل به این لحاظ نباشه ببینید شما چیزی که با چوب بیابان آشنا میدن در همیشه در زمین انواع تخم سازجاد هست حالا عدف حرزی باشه باران که میاد این تقمه ها میشه این اشاره میخواد بکنه که ذات انسان مثل انسان لفی خود در ذات انسان همیشه میله به انحرافی هست مثل تن از که تبیری به استدرات شده است جنا چه کار میکنه این قناع که شما میشونید اون حدثه هایی که در وجود شماست تمایله به گناه ذاره این نفس لعماراتون به سور میبینید اون بعضه ها رو رشد بیده این صدای موسیقی و غنا میاد در وجود شما منظورم از کردم علاوه بر اینکه منظور میرواری میگه مضمون ملالزه کنه حالا بعید نمیشه شماها همچنان غزلمودی هستید مثلا که از مجموعه روا در نمیاتید اون مزمون فاسد رو که شما گوش میکنید یک شعر فاسدی که گوش میکنید و این رو به صورت غنا بوش میکنید با طبیعت شما اون صورت جنایی بیشتر میسازه اگر شعر رو بخونید اونقدر شما رو تحریک این ببینیم کما به طلما از برقه کردیم اون تشبیه کسانی که یوم به طلما از برقه میکردن ناظر به اینه که این صدا و این کیفیت و این تهیج میاد اون انا نفضل ارماراتم به سو اون سوها رو روش میگه اونا رو یواشواش زنده میکنه کما یوم به طلما برقه میکنه بگیم این مردان در تبشید بحث حدیث از بحث خارج هست. اجمالی مطلب بریم به بحث دیگه از کنیم که بعد از بحث قنا مرموم شیخ وارد بحث قیبت شدن خب بحث قیبت حرمت قیبت به خاطر که آیات مبارکی درش وارد شده جای بحث نداره و کاملا واضح و روشنه این نمر کلام مثل قاعده خودمون مقداری از روایاتش رو متعرض میشیم. روایات قیبت رو مرهوم صاحب وسایل در کتاب الاشره آورده بنا به نسبت باب با مردم مرحوم صاحب وسایل چون در کتاب کافی کتاب الاشره توی اصول کافیه تو فروق نیست برای اینکه صاحب وسایل مقدار از اصول را بی مثلا کتاب القران کتاب القران در کتاب کافی در اصول صاحب وسایل با عنوان و صلات ابواب صلات باب القراطه قرائت القران اونجا آورده خاسته رواست کافی رو دیار اون رو تو اصولامه تو فق نیامده ایشون مخاطب یک جای مناسب پیدا کنه تو فق هم بیاره توی ابواب الصلاة آورده چطور بده اشتر و سایر وسایل تو کتاب الحج آورده ایشا ذنجم نخوره مثلا ابواب السفر رو تو کتاب الحج آورده چون در حج غالبا مثلا سفر میره به مناسبتی آداب سفر کیفیت سفر تو ابواب الحج آورده کتاب الاشره تو ابواب الحج آورده اگه بی ناز باشه جلد چاپ قدیم وسایل چاپ محمد ربانی خود کتاب الاشره اونجا آورده های آیه بوریجی علی این آیه کلا تنظیم کرده این رو در جلد 20 آورده. یعنی در کتاب اشره بعد از قبل از کتاب مکاسب آورده یک جندی رو به عنوان کتاب و قرار ده مثل سال و سال عمل نکرده مستقلن خب این شاید بهتر به نظر بخوره از افواق اشراق قالبن جنبه های اخلاقی داره لیکن برداشتن احنام فقیش مثل حرمت قیبت و کذب و اینها رو در همین جا بردن این ماله بارش روایاتی رو که مرحوم شیخ انساری قدس الله نفسه تو مکاسب آورده آیاتی که چند آور خب آیه معروفش که آیه خاص اونه در سوره مبارکه حجرات که این سوره تقریبا میشه گفت که کلا سوره اخلاقی هستی امور اخلاقی شریعت مقدسه تو این سوره است که خیلی از اینجا هم قابل اعتماد قابل مراجعه است و بعد در این آیه مبارکه ابتدایش اینه داره یا ای الذین کسی اشترم کثیرن بنعلن ان بعضا وله اسمو اسم زن در است بحث اول گفتیم که تکرار نکنیم در است بحث در بحث اول پایه رو مقایسه کردین اصلاً از جایی مقایسه آیه الّا زن در اینجا به معنای فعل انسانی است یعنی توهّم زدن اتهام زدن اسم زن در اونجا معنی ادراکه این نورن در حق شیعه. از این ما تو بحث اصول داری هم وردیم لیکن واضحه که یکیش خیلی از دیگریست اجمالاً اجمالا از این آیه مبارکه در میاد که بعضی از زنون اشکال نداره و از کردیم مثل قرتبی اعتقاد دارن که این آیه رو با اون آیه چند کرد این نورن زن در حق شیعه. با این آیه معلوم شه نه بعض زنه اسمو یعنی بعضی از زنون اشکال نداره ازا ببطر مثلا خبر سقه خبر عدل مثلا قول اهل خبره مقدم مقیم کسی که قیمت گذاری میکنه قول طبیع اینا خارجه عمل کردن به این زنون خارجه چون در درس اصول توضیحات گذشت دیگه اینجا تکرار نمیکنه بعد میفرماید ولا تجسس این مقدمه بود مقدمه این بود بعد مسادیق اون رو یکی تجسس ولا لایخته بعضو کن بازن. این تجسس، البته گفته شده تحسس هم داریم، فتهسس یوسف و واقعی، حالا تر تجسس به تحسس باشه، و لایخته بعضو کن بعضاً دو چیزه که مصداب ام بعض بعضاً زن اسمون یکی تجسس یکی هم لایخته بعضو کن بعضاً ایوه به باهاش دکمان یا کل لحم اخیه می‌ده، فکر احتمال و تغلب. ان الله تروا و رحیم دو دو نه یعنی اینی که شما به پشت سرش صحبت بکنید این گناهه مثلا رو جلوش بگید مخفیانه پشت سرش حرف نکنی ان بعض از ظنه اسمو چون این خبر میزنه که ممکن خبرش مطابق با واقع نباشه دروغو که دروغ گفته باشه اشتباه کرده باشه ولا يغتاب بعضكم بعضا ایوه به احد که من یک لهن میتن در جهت تجسم عمل غیبت خود آیه مبارکه به عنوان لهن اخیه میتن ذکر شده برادر مؤمن رو برادر گرفته ابز او رو, اعتبار رو و اعتبار او و رو به منزله لهن گرفته و آبروی او بردن رو منزله عقل لحم گرفته میت میت تا تازه اگه برادر زنده باشه مشکل برادر مرده مرده به که غائبه حاضر نیست تعبیر به میتن به لحاظ فایبدنه فکرش تو مو هستم چرا از من حرمته و توب الله ان و رحیم این راج به آیه مبارکه چون دو سه تا آیه هست یک آیهش در باب مستثنیات غیبت لایح بالله الجهر به سورن نقول الا من ظلم یا الله من این انشاءالله در جمع طعرض میشیم یک مقدار راج به آیات همچه آیات شده مثلا ما واضحه مخصوی این آیه مبارکی که سعی کرده رو تجسوم بده در روایات ما اون تجسوماتی که راجب به قیبته مختلفه یکی کم در آیه آمده در همین تأکید شده این روی اما مثلا دیگری هم آمده اینجا ایک در کتاب فقی از در جلد چار از ارزور الفقی یک روایات بسیار مفسر چند سفیه مناه النبی چند سفر از کلم هیئت مجموعه جعلیه واضحه کامل مفردازش هم که ها برزه باشه هیئتش که قطعا جعلیه نه هن نبی ها هم كذا و کذا ها نه هن نبی این حالاتی جعلی داره لیکن مفردازش به ازیاش آمده یکی اینه یکی بسیعتا نبیل عویزره اونم جعلیه حالت جعلیش از این کتاب مناحن نبی ایشون در اینجا نقل کرده شماره یک باب 11 ابواب الاشره ببینید در کتاب همینجا در همین با امالی ابن توسی سررش رو یک بار گذاشته انا ابی ذر فی حدیث سیوسیه النبی لا این حدیث هم طولانی چند صفحه اینم جلیه جری به این معنا که یک کیترازاشه 20 تا 30 تا 40 تا 50 تا 80 تا 350 تا 500 تا حدیث از مختلف نه یک نواب مال انس آیشه ابو هره برداشته به اصطلاح سنداشه حرز کرده یکی یا عباده اولش گذاشته کشترم ارده ولی این حدیث هم جلیه البته حدیث دیگری هم ما واسیت نویل عوی زدیم که کمتره کن سند زعیفه اما این آثار جلبه میشه دیگه واضح این نمیشیم اشاراتی میکنیم راجع به بحث غیبت در مجموعه روایات ما و در مجموعه ما جهات بسیار مختلفی جهات اگر بخواییم الان من همین فهرستش برای شما میام بگیر بقیهش خود حساب بگیرم من فکر کردم حتی اگر بخوام سریع هم بخونم یکی یکی مگه اگر آمین مایل باشم در آشنایی با حدیث من سریع بخونم ببینیم فهرست نگاه بکنید باب 117 هیفتهش تحریم و ایزا المؤمن چون حیبت هم یعنی ایزا دیگه این سی و نه تا حدیثم بابرده باب صده هیچدهش باب و تحریم احسای اثرات مومد انسان دنبال این بگرده که یک اشتباهی کرده گناهی کرده زهلی لغزشی انجام داده اینا رو به پیگیری بکنه این هم حرامه این بیستو یکی حریزه هرده اینجا میشه چه شستا باب تأکد حرمت ارتیاب المومد اینجا نبدود تا حریزه هرده که با اون شستا میشه سنان پنجود دوتا باب ان کفار از الی اختیاب ولی رسال این چون بحث فقیه هم داره متعرض میشیم اینجا پنج رحلی سرده باب تحریم سما الگیبه از سیش قیبت غیبت به فرق مستر باب غابه است غیبت اسم مستر باب اختابه است باب تحریم سما الگیبه و وجوب رد ها اندل استطاعه اینجا پنج دارده دا که باب 5 پنج دارده تا با 15 باب از 20 و مجموع این چند تا بابی که داریم این شد صد هفتاد مورد سد دو تا باز بابو تحریم بحتان علم که حالا به ما نمیخوره خیلی بابو تحریم اقتحام مؤمن این پونزه تا بابو اضاعت سر المؤمن و روایت ما یعیبوهو و افشاعت سیعفی حرامو اینم دیفده تا باب ان المؤمن حرامون کلهم ماله و ارزو و دما اینم دو تا دقیقاً شاید باشه بالای 200 حدیث که مجموعه اول ما بخونیم نخونیم متحقیم. توی مجموعه انوار روایاتی که ارتباط مای با هی بعد داره خیلی فراوانه لذا انسان بحث نمیخواد فقط اگر بخویم بحثی بکنیم اگر مایل باشین آوی دو روز دو روز بعد اسامی بخونیم که شرحی برد و این که بشه حدیث شناسی و اندا خیلی فراوانه و این یک نکتی دیگری که هست مثلا در همین باب نمیدونه آران اگر خواستم دخونیم از اول باب که شروع میشه تا مثلا حدیث شماره بعد تا حدیث تقریبا شماره چه؟ ملاحظم ترمونیم قالبش از اسانی ضعیف است و خراب همه تنبیه الخواتر مثلا فرسی همین کتاب به اصطلاح قطف راوندی امالی شیخ توسی که این حدیث او اون اخبار رزا دعایم الاسلام حدیث شماله از کافیه ما بیشترش میره از مستدرک و کتاب های از شماره چهل باز رفته کتابای دیگه یعنی توی مسادر معروف چ... کتب عربعه مخوام بگم مخوام در کتب عربعه متعرز بشین از شماره چهل از کافیه پنجا و هم از کافیه خیلی عجیبه پنجا و هم از کافیه پنجا و نون. باز میره مسادر دیگه میگنید یادش هم از کتب اهل سنت از اوالی و عیاشی و تفصیل ایاشی یعنی در کلش از کافی ستا شد چهار شد چند از فقیه هم مثلا دو تا که یک جمع همی حدیث مناهن نویز که پر غلاد ضعیفه علایه همه از اجایب کار اینه که اگر مایر بودن آقایون بفرمان تو برشونی بخونیم همون به طور طبیعی مؤزم باب احادیث ضعیفه مؤزم باب اگر مخواهید توضیح برشون دیگر من دیشون برشونم نبلا حس مطلب مسلمه اما در کتب اربعه کم داریم